بسم الله الرحمن الرحیم فصل احکام قاطع الطریق فصل بعدی ما از کتاب حدود قطع طرق هستند راهزن راه میبنده قاطع طریق پس احکامات بعدی در رابطه با اون راهزن هست اون سر راه میستند برای دوستی وقططع طريق على رب اقسامن راهزنان بر چهار قسمند یک ان قلو ولم میخذ المال. اگر راهزن شخص و کشت و مال را بر نداشت قوطی این گروه کشته میشد. این گروه از راهزنان کشته میشد. ف این قلو و اخذمال اگر همکشند و هم مال رو بردند، قتلو و سولیبو کشته میشند این گروه از راهزنان و و آویزان میشند البته بعد از اینکه غسل شدن کفن شدن و برشون نماز شد بر چوبی و چیزی دیگه آویزان میشند این گروه گروه دوام این که هم کشتند و هم مال رو برد بردند. 3 و این اخذوا المال ولم يقتلوا گروه سوم که اگر مال رو برداشتند و نکشتند تو و ایدیشم و ارجلهم من خلاف دست و پاشون بر خلاف قطع میشه. یعنی دست راست و پای چپ. دست راست و پای چپ. این گروه سوم بود که فقط مال بردند و نکشتند. اینا دست پایشون بر قط میشه. فه اخاف و ولم یا خدومالن ولم یقتولو. گروه چهارم از راه میگه اگر ترساندن مردم رو مال بر نداشتند و کسی رو هم نکشتند. خوبی سو و ازیرو. این گروه حبس میشند و تعذیر میشند. بله. پس چار گروه از قطعه ترقه ذکر کرد احکامات اونا رو بیان کرد. و من تاب منهم هم قبل القدرتی علیه. هر کسی از قطعه ترقه از راهزنان قبل از گرفتار شدن به قانون به حکومت اسلام مردم این حکامات رو جاری نمی کنن. یه موقع اینو بدونیم. هیچ حدی رو تا اینجا ما خوندیم مردم جاریش نمی کنن. حکومت حکومت اسلامی اونو جاری میکنه اینو داشت داشته باشیم خب میگه اگر و من تاب من قبل القدرتی علیه هر کسی از این قطاع و طرق از این اگر اومد توبه کرد قبل از گرفتار شدن به حکومت قبل از اینکه گرفته بشه سقطت انه الحدود، حدود ازش ساقط میشه. دیگه حد برش اجران نمیشه. و اخذ بالحقوق و البته گرفته میشه به حقوق. یعنی اون حقوقی رو که تعلق به انسانها دارند، اونا ازش گرفته میشه. مثلا مالی رو برده اون مال بازگردونده میشه. کسی رو کشته قصاص میشه. اما این حدودی که اینجا ذکر شد اینا از گردنش ازش ساقط میشه فصل بعدی احکام سیالی احکام سیال هست تعدي کردن تعدی کردن بر دیگران به شکله از روی ظلم احکامatin مساله ورتوش می ده و من قصد با اذن فی نفسه او مالی او حریمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه هر کسی که مورد تعدی قرار گرفت مورد آزار قرار گرفت در نفسش یا مالش یا حریمش فقاتل عن ذلك و امده دفاع کرد و قتل و کشت فلا ضمان علیه برش زمانتی نیست قصاصی برش نیست دیهی برش نیست کفاره ای برش نیست بله از خودش یا مالش یا حریمش دفاع کرده و علی راکب الدابه ضمان ما اتلفت دابته بله پس میگه اگر دفاع کرد و کشت زمانی برش نیست و على راکب دبتی دمان و اطلفت و دبتو. و بر کسی که سوار بر چارپاست زمانت هست چرا که آن را چارپایش تلف کرده کسی سوار است سوار یک است چیزی رو از بین برد چه اون چارپا مال خودش باشه چی نباشه اون شخصی که سوار هست زامن هست چیزی رو از بین برد و اون چارپا باید بدلشو بده قیمتش قیمتشو بده پس واجب است بر اون برگرداندن بدل اون چیزی که تباه کرده است اون چارپایی که سوارش هست این هم پس احکام سیالو اینجوری توضیح داد خب ويقاتل أهل الباغي بثلاثة شرائط. جان كارد ميشي بأهل الباغي ببغات بباغيها بس شرط. يك أن يكون في مناعة يك داراي قدرات باشا داراي إزتو قدرات باشا وإن بادو چيز محقق ميشي. یه رهبری داشته باشند که متعیش باشند دو قدرت در وجود آنها باشه یا این که تعدادشون زیاد باشه یا نه یک کمینگاهی داشته باشند پس شرط اوله که با اهل بقی جنگی اینه که در منعت و قدرت باشند ازشون حسابی برده بشه قدرت داشته باشد دو و ان یخرج ان قبضه الامام شرط دوم اینه که از طاعت امام امام مسلمین امام اون کشور خارج شده باشد سه و ان يكون لهم تاویل الصائخ تأویل سائغ تأویل محتملی داشته باشند تأویلی با قاطعیت باطل نباشه جای تأویل باشه بله. این سه شرط رو داشتند اهل بغی هستند اگر دیبول بغاد تو کتاب خود شاورده اگر یکی از این سه شرط رو نداشته باشه بغات نیستند و قتال اونا واجب نیست و مؤاخذه میشن به اعمالشون البته و آنچه که مترتب بر اون اعمال شده اما معامله بغات رفتار بغات باقی ها باشون نمیشه ولا يقتلوا اسيرهم اسیر باغي ها کشته نمیشه اهل بقی مسلمانند ولا يغنم مالهم مالشون به غنیمت برده نمیشه و لا على جريحهم شون جريحی بود انسان زخمی بود این کشته نمیشه کارش تمام بشه و عجله بکنه که بعدی زودتر کشته بشه میگه این کار با جریح با مجروح اهل بغی نمیشه فصل فصل بعدی رده فصل بعدی در رابطه با مرتدین هست در باره بازگشت از دینه و من ارتد عن الاسلام میگه هر کسی بازگشت از اسلام اسطوتی به ثلاثه طلب توبه میشه سه مرتبه سروس فانتاب اگر توبه کرد که خب نور علا نور و الله قتل میگه اگر توبه نکرد کشته میشه ولم یو غسل میگه غسل داده نمیشه ولم یو علیه برون نمازی خوانده نمیشه ولم یدفن فی مقابل المسلمین در مقابل المسلمین دفن نمیشه بله. فصلون فصل بعدی و آخرین فصل از این کتاب حدود احكام تاريك السلاتي احكام تارك السلات هست تارك السلاتي على ضربين تارك السلات بردو نوعه احدهما يك نوعه آن ان يتركها غير مؤتقدين مؤتقدين لوجوبها فحكمه حكم المرتد. نوعه اول تارك السلات و اینه هست کسي هست که تاريك بكوند نماز را اعتقادی به وجوب نماز به واجب بودن نماز نداشته باش نمازو ترک میکنه و اعتقادی اصلا به نماز نداره فحکمه حکم مرتد حکم این نوع تارک و حکم مرتد هست اینی که اعتقادی به وجوب نماز نداره او نمیخونه اما نوع دوم و ثانی این یتروک ها کسلن معتقدن لوجوبی نوع دوو که از روی تنبلی نماز رو ترک کرده اعتقادی به واجب بودن نماز داره قبول داره که نماز یکی از ارکان دینه اما رو تنبلی نمیخونه فاستتاب میگه این شخص طلب توبه میشه آقا به توبه کن فا انتاب وصله اگر توبه کرد و نماز خوند که هیچ و الا ودرنا قتل حدا میگه حدن کشته میشه و کان حکموهو حکم المسلمین و حکمش حکم مسلمینه این حکم مسلمانو داره دفل میشه غسل میشه نماز برش خنده میشه بله حکم مسلمانو داره خب اینجا این نقطه رو اضافه کنن اجرای حدود که تا اینجای کار خوندیم توسط حکومت است نه اینکه افراد از سر خود بیان حدود و اجرا کنند خرج و مرچ پیش بیاد نه این بر عهده اشخاص نیست بر عاده حکومت هست امام هست امام مسلمین امم مسلمین که این روزا زیاده اون زمان یکی بود خب